کانال تلگرامی هزار افسان، داستان های صوتی به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده عظیمه علی گلزاده این داستان خبر شیشهی یکی بود یکی نبود روزی روزگاری پادشاه و ملکهای بودند که به هر چیزی آرزو داشتند رسیده بودند به جز داشتن یک بچه بالاخره بعد از دوازده سال ملکه پسری به دنیا آورد اما خودش نتونست از این شادی لذت ببره چون فردای اون روز از دنیا رفت او پیش از مرگ شوهرش رو صدا زد و گفت هرگز نظر پای بچه به زمین بخوره چون اگه این اتفاق بیفته او اسیر یه پری بد جنس میشه و مجبور میشه آزار و عذیتهای اونو تحمل کنه این آخرین کلماتی بود که ملکه بیچاره به زبون آورد کم کم پسر بزرگ شد و زمانی رسید که وزنش اونقدر زیاد شد که فرسایش دیگه نمیتونست اونو بغل کنه به همین دلیل براش یه صندلی چرخدار ساختن تا بتونه بدون کمک دیگران و پا گذاشتن روی زمین در قصر و باغ گردش کنه. گاهی اوقات هم با تخت بزرگ اونو به این طرف و اون طرف می‌بردن و همیشه مواظب بودند که او یه لحظه هم پاشا رو زمین نذاره. ولی چون اینطور زندگی کردن برای سلامتی پسر ضرر داشت، پزشکان توصیه کردند از سواری یاد بگیره. خیلی زود شاهزاده سوارکار ماهری شده و با اسبش به گردش های طولانی میرفت و همیشه مهتر پدرش و تعدادی از درباریان اونو همراهی میکردند او هر روز میون دشتها و جنگل های اطراف گردش میکرد و بعد از زورها سعی و سالم به خونه برمیگشت. سالها به همین شکل گذشت. شاهزاده مرد کاملی شد. دیگه هیچ کس ملکه را به درستی بیاد نداشت. البته همه چیز مثل قبل روایت میشد اما این ها از روی عادت بود و همه دلیل اصلی اونو فراموش کرده بودند. یه روز شاهزاده و همراهانش برای سواری به همون جنگلی رفتند که پدرش گاهی اوقات برای شکار میرفت. اونها به رودخونه رسیدند که کنار اون پر از بوته‌های جنگلی بود. وقتی سوارکارها به راه افتادند تا از رودخونه رد چند صدای سوم از پا خرگوش کوچکی را که زیر بوتها بود ترسوند و حیوان کوچک جست و خیز کنم به طرف بیش دوید. شاهزاده اونو تعقیب کرد و وقتی میخواست خرگوش را بگیره ناگهان زین به شکست و محکم به زمین افتاد در همان لحظه که پای شاهزاده به زمین خورد ناگهان پدید شد و دیگه هیچ یک از همراهانش نتونستن اونو پیدا کنند جستجوی جنگل هیچ فایده ای نداشت ناگهان همه به یاد حرفهای ملکه در مورد نیروی یه پریه بدذات وقتی خبر ناپدید شدن شاهزاده به پدرش رسید پادشاه خیلی ناراحت شد ولی چون برای آزادی او هیچ کاری از دستش بر نمیومد غم و قصر رو کنار گذاشت و دعا کرد دعا کرد روزی برسه که پسر جوونش بتونه خودشو از دست دشمن نجات بده. لحظه ای که پای شاهزاده به زمین رسید احساس کرد قدرتی نامرئی با خشونت اونو گرفته و با خودش میبره. اما نمیدونست به کجا؟ او ناراحت و غمگین به خاطر ترک وطنش وارد دنیای جدیدی شد. یه قلعه باشکوه که دریاچه بزرگی اونو احاطه کرده بود. او وارد این، دریاچه بزرگ شد. اونجا خونه پری بود و تنها راه رسیدن به اون گذشتن از روی یه پل ابری بود در یه سوی دریاچه کوه‌های بلندی سر به آسمون کشیده بودن و جنگل تاریک و انبوهی در ساحل اون قرار داشت و همه جا را مه قلیزی که فرا گرفته بود هیچ صدایی به گوش نمی رسید. به محض اینکه پری به سرزمین خود رسید مرعیش و داروبش آزاده کرد و گفت اگه دستورات اونو مو به مو اجرا نکنه به شدت تنبیه میشه بعد یه تبر شیشهای بهش داد و گفت باید از پل ابری رد بشی به جنگل آن سوی دریاچه برو و تمام درختان رو تا قبل از غروب خورشید قطع کن در زم با عصبانیت اونو تهدید کرد که حق نداره با دختر سیاپوسی که احتمالاً در جنگل خواهد دید حرف بزنه شاهزاده و صبر و حوصله به حرفای او گوش داد و وقتی دستورات پری به پایان رسید تبر شیشهی رو برداشت و به طرف جنگل رفت او با هر قدم بیشتر در ابرها ها فرو میرفت. اما ترس باعث شد پاش قدرت بگیرند و سالم از دریاچه رد شد و فوری کارشو شروع کرد اما به محض اینکه با تبرش اولین ضربه را فرود آورد تبر شکست و هزار تکه شد جوان بیچاره از شدت وحشت نمیتونست چکار کنه چون از تنبیه پری که در انتظارش بود خیلی میترسید او در جنگل به این سو و آن سو میرفت و سرگردون شده بود بالاخره از شدت خستگی و ناامیدی به زمین افتاد و خوابش برد نفهمید چه مدت در خواب بود که ناگهان با شنیدن صدایی بیدار شد و دید یک دختر سیاه پوست بالای سرش ایستاده پسر که هشدارهای پری رو فراموش نکرده بود جرأت نکرد با دختر حرف بزنه اما دختر با لحن ای به او سلام کرد و پرسید که آیا اسیر پری بدجنس شده است؟ شاهزاده بدون این که حرفی بزنه فقط تکون داد. بعد دختر سیاه پوست گفت که او هم اسیر پری هست مجبور به همین شکل و قیافه بمونه تا اینکه دل یه جوون براش بسوزه و او رو از روتخونه یک‌کم دورتر بود رد کنه چون در آن سوی رودخونه سرزمین پری و قدرتش به پایان میرسه حرفهای دختر اعتماد شازاده رو جلب کرد و او هم ماجرای غم انگیز خودش رو تعریف کرد در پایان دختر ازش پرسید که به نظر میاد او چطور میتونه از تنبیه پری جان سالم به در ببره چون هم تبر را شکسته هم درختها رو قطع نکرده دختر سیاپوس جواب داد تو باید بدونی پریه بدجنسی جنسی که هر دوی مورو اسیر کرده مادر منه اما نباید این راز را فاش کنی چون زندگی من به خطر میفته. اگه تو قول بدی به من کمک کنی منم اینجا میمونم و همه کارهایی را که مادرم به دستور داده انجام میدم شاهزاده به خوشحالی قبول کرد و دختر یه بار دیگه به او سفارش کرد که نباید رازش رو فاش کنه و بعد شربدی بهش داد که به محض اینکه مرد جوان اونو نوشید به خواب عمیقی فرو رفت اما وقتی بیدار شد با حیرت متوجه شد تبر سالمه و همه های جنگل هم قطع شده و روی زمین افتادن او با عجله از پل ابری گذشت و به پری گفت که دستورش را اجرا کرده زن وقتی فهمید همه درختهای جنگل بریده شدهاند و تبر هم سالم مونده خیلی تعجب کرد چون باور نمیکرد او خودش این کار رو کرده باشه پرسید که آیا دختر سیاهپوست رو دیده و باش حرف زده یا نه اما شاهزاده بخون سردی گفت که حتی یک لحظه هم دست از کار نکشیده و سرش رو بلند نکرده پری که دید نمیتونه از او حرف بکشه کمی نان و آب بهش داد و بعد کماد کوچک و تاریکی را نشونش داد و گفت که باید اونجا بخوابه. هنوز خورشید طولون نکرده بود که پری شاهزاده را بیدار کرد و دوباره تبر شیشهی به دستش داد و گفت همه درخت را که دیروز قطع کرده تک تک کنه و بعد همه هیزم ها را هم دست بندی کنه. تا برای روشن کردن آتیش آماده باشن در زم دوباره هشدار داد که اگر در جنگل دختر سیاپوس را دید حق نداره باش حرف بزنه با اینکه این, این وظیفه از کار دیروزی راحتتر هم نبود جوون با خوشحالی به راه افتاد چون میدونست میتونه روی کمک دختر سیاپوس حساب کنه او با قدم های سری و از پل عبری رد شد و هنوز به اون طرف نرسیده بود که سر و کله دختر پیدا شد و با او احوالپرسی کرد وقتی دختر فهمید که پری این بار چه دستوری داده لبخندی زد و گفت اصلا نترس بعد شربت دیگه‌ای بهش داد که خیلی زود شاهزاده رو به خواب عمیقی فرو برد وقتی جوان بیدار شد همه کارها انجام شده بود درختها تکه تکه شده حیزام ها در بسته های کوچیک آمادهی استفاده بودند او به سرعت به قلعه برگشت و به پری گفت که دستورش رو اجرا کرده او بیشتر از دفعه قبل تعجب کرد و دوباره پرسید که آیا دختر سیاپوس را دیده یا واش حرف زده یا نه؟ اما شاهزاده چیزی را لو نداد روز بعد پری دستور دیگه بهش داد که انجام دادنش از دو بار قبل سختتر بود او به جوون گفت باید در آن طرف دریاچه غلعهای بسازه و فقط از طلا و نقره و جواهر استفاده کنه و اگر نتونه در مدت یه ساعت کارش و تمام کنه مجازات سنگینی در انتظارش خواهد بود شازاده بدون نگرانی به حرفهای او گوش کرد و چون خیالش راحت بود که دوست سیاهش کمکش خواهد کرد او با امیدواری از پل رد شد و فوری فهمید کجا باید قلعه را بسازه چون اره تبر چکش و همه وسایل ساختمانسازی اونجا آماده بود اما از طلا و جواهرات و نقره هیچ خبری نبود قبل از اینکه شاهزاده احساس ناامیدی کنه دختر سیاپوست از پشت یه تخت سنگ اونو صدا کرد دختر از ترس اینکه مادرش اونو ببینه اونجا پنهان شده بود جوون با خوشحالی به طرف او دوید و خواهش کرد که در انجام دستور جدید کمکش کنه. اما این بار پری از پشت پنجره شاهزاده را با نگاهش تقییب می و دید که او همراه دخترش پشت سنگی پنهان شدند. او از شدت عصبانیت چنان جیغ بلندی کشید که صداش به کوها خورد و همه جامان عکس شد. وقتی زن میگین با آن لباس عجیب و موهای پریشونش از روی پل ابری به طرف اونها میدوید جوونها جرأت نمی‌کردند از مخفیگاهشون بیرون بیان شاهزاده خیلی زود همه امیدش رو از دست داد اما دختر به او گفت شجاع باش و با تمام سرعت دنبال او بیاد اما قبل از اینکه به راه بیفتن دختر تکهای از تخت سنگ را کند و جملهای را رو به سنگ تکرار کرد و بعد سنگ رو به طرفی که مادرش از اونجا میومد پرت کرد. همان موقع قصر باشکویی جلوی پری ظاهر شد که درخشش خیره کننده ای داشت و درها راه روهای زیادش باعث شد مدتی طولانی طول بکشه تا او بتونه راه خروج رو پیدا کنه. در این مدت دختر سیاه شاهزاده به طرف رودخانه ای دویدند که اگر از اونها میگذشتند برای همیشه از دست زن بدجنس نجات پیدا میکردند، اما هنوز نصف راه را نرفته بودند که صدای پری رو که آنها رو تعقیب میکرد پشت سرشون شنیده شد شاهزاده خیلی ترسید اما جرأت نمیکرد پشت سرشون نگاه کنه احساس میکرد همه نیروشو رو از دست داده اما قبل از اینکه ناامیدی برش چیره بشه دختر چنگ کلمه جادویی را تکرار کرد و فوری به یک برکه تبدیل شد و شاهزاده هم به یک اردک تبدیل شد که روی آب برکه شناور بود. خشم پری با دیدن این صحنه به نهایت رسید و از همه حقه های جادویش استفاده کرد تا برکه را ناپدید کنه. او یک تپه ماسه‌ای به وجود آورد و داخل برکه ریخ تا همه آب اون خشک بشه. اما ماسته ها برکه را به جلو هل دادند و آب آن به جای آن که از بین بره بیشتر شد. وقتی پیر دید نیروی جادوش هیچ فایده نداره تصمیم گرفت کلک بزنه. او مقدار زیادی دانه های تلایی داخل برکه ریخت تا شاید اردک را به دام بندازه اما تلاش هاش هیچ نتیجه ای نداد چون پرنده کوچک اصلا دلش نمیخواست گیر بیفته. بعد فکر جدیدی به ذهن پیرزن بدجنس رسید و پشت سنگی که قبلا به فراری ها پناه داده بود پنهان شد و منتظر لحظهی موند که شاهزاده و دخترش برای ادامه دادن راه به شکل اصلی خود تبدیل بشند. انتظار او زیاد طول نکشید چون به محض اینکه دختر فکر کرد مادرش دست از سرشون برداشته خودش و شاهزاده رو دوباره به آدمیزاد تبدیل کرد و با خوشحالی به طرف رودخانه رفتند اما هنوز چند قدم بیشتر پیش نرفته بودند که پری بدجنس با خنجری در دست به طرفشون اومد و نزدیک بود اونها رو گیر بندازه که ناگهان به جای شاهزاده و دخترش با یک کلیسای بزرگ روبرو شد که جلوی در اون راهب قول پیکری نگهبانی میداد او که از خشم و عصبانیت نفسش بند اومده بود خواست خنجرش رو در قلب راهب فرو کنه اما خنجر تکه تکه شد و جلوی پاش افتاد سپس تصمیم گرفت کلیسا رو خراب کنه تا دو جوون هلاک بشن پری سه بار پاشو به زمین کوبید زمین شروع به لرزیدن کرد و کلیسا و راهب به شدت تکان خوردن وقتی پری این وعد را دید از ساختمون فاصله گرفت تا خودش آسیبی نبینه اما یک بار دیگه نقشه اش شکست خورد چون هنوز چند متر از کلیسا فاصله نگرفته بود که ساختمان و نگهبانش هر دو ناپدید شدند و او متوجه شد در جنگل تاریکی قرار داره که پر از گرگ و خرس و حیوانات وحشی هست. این بار خشم او تبدیل به ترس شد. چون هر لحظه منتظر بود یکی از اون درنده ها که زورشون از او بیشتر بود اونو تکه تکه کنه. زن فکر کرد بهترین کار اینه که هرچه زودتر از جنگل خارج بشه و به تعقیب فراری ها ادامه بده. و به زور یا کلک یا حقه هر دو رو بکشه در اون مدت شاهزاده و دختر سیاه دوباره به شکل اولشون تبدیل شده بودند و با عجله به طرف رودخونه می رفتند اما وقتی به اونجا رسیدند متوجه شدند هیچ راهی برای گذشتن از رودخونه وجود نداره و قدرت جادوی دختر هم دیگه نمی تونه کمکشون کنه به همین خاطر دختر رو به شاهزاده کرد و گفت زمان آزادی من هنوز نرسیده اما تو قول داده ای برای آزادی من تلاش کنی پس باید هرچه میگویم انجام بدی این تیر و کمان رو بگیر و هر جونوری را که دیدی بکش تا وقتی که مطمئن شوی هیچ حیوانی رو زنده نگذاشتی او این حرفا رو زد و ناپدید شد لحظه بعد یه گراز وحشی از بینون بوتهها بیرون اومد و به طرف جوان حمله کرد. اما شاهزاده اعتماد به نفس خودش از دست نداد و تیر و کمونش رو آماده کرد و حیوان رو نشونه گرفت. تیرش درست به جمجمه گراز خورد. حیوان به زمین افتاد و از پهلوش یه خرگوش کوچیک بیرون پرید و در ساحل رودخونه شروع به دویدن کرد. شاهزاده یه بار دیگه تیری پرتاب کرد و خرگوش و کشت. اما همون لحظه یک کبوتر به هوا پرید و بالای سر او شروع به پرواز کرد او آزاری نداشت اما جوون که سفارش دختر را فراموش نکرده بود تیر و کمونشو آماده کرد و کبوتر هم به عاقبت گراز و خرگوش دچار شد وقتی جوون برای تماشای بدن پرنده نزدیکتر رفت به جای کبوتر چشمش به تخم گرد و سفیدی افتاد همانطور که او به تخم فیره شده بود و نمی‌دونست باید چیکار کنه صدای بال پرندهی را بالای سرش شنید وقتی سرش را بلند کرد لاشخور بزرگی را دید که با پنجه های باز به طرف او میاد جوون در یه چشم برهم زدن تخم را برداشت و با همه زورش به طرف پرنده پرتاب کرد باور نکردنی بود اما به جای اون هیولای زشت دختر بسیار زیبایی جلوی چشمهای حیرت زده شاهزاده ظاهر شد و اما در این مدت پری پیر بدجنس راه خروج از جنگل را پیدا کرده بود و حالا خودشو آماده آماده میکرد تا با آخرین نیرویی که براش باقی مونده به سراغ شاهزاده و دخترش بره او به محض اینکه از جنگل بیرون اومد سوار کالسکهش شد و اجده های ترسناکی اون رو میکشید و با اون در آسمون به پرواز در اومد اما همین که به رودخونه رسید دید دو عاشق بازوی هم و گرفتند و مثل دو ماهی در عرض رودخونه شنا میکنن. او بدون اینکه به خطر فکر کنه به سرعت پایین اومد تا اونها رو بگیره اما موجهای رودخونه کالسکه را به عمق آب کشیدند و پیرزن زن بدجنس اونقدر پایین رفت تا به بوته های کف رودخونه گیر کرد و خوراک خوشمزهی برای ماهی ها شد بالاخره شاهزاده و همسر آیندش آزاد شدند. اونها فوری به سراغ پادشاه پیر رفتند و او با خوشحالی و آغوش باز اونها را پذیرفت. روز بعد جشن عروسی بزرگ و با شکوهی برگزار شد شاهزاده و همسرش سالهای سال با خوبی و خوشی در کنار هم زندگی کردند کانال تلگرامی هزار افسان داستان های افسانه ای صوتی نشانی کانال تلگرامی تی نقطه می slash مهران دوستی t نقطه m e نشانی وبلاگ ما m BFA نقط مهران دوستی. blogگva.com کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد دوستی.